قصه دوم کَت تا بالای دیوار آمد. مردها از روی زمین بلند شدند و ایستادند. کَت خدا خم شد در نور ماه، مردها را نگاه کرد. و پرید پایین و رفت طرف اسلام و دستش را گرفت از تاریکی کنار دیوار رد شدند و رفتند به خانه اسلام کت خدا دم پنجره ایستاد اسلام رفت تو زیلو را جمع کرد و از پنجره آورد بیرون با هم راه افتادند و آمدند کنار استخر زیر بید ایستادند و چند دقیقه در درگوشی حرف زدن و بعد آمدن طرف مردها اول کت خدا و بعد اسلام از دیوار رفتند بالا و پریدند آنور دیوار چند ثانیه بعد دوباره پیدایشان شد که دوتایی آمدند روی دیوار و به مردم نگاه کردند کت خدا با صدای گرفته گفت فاتحه آن وقت مردم فهمیدند گیج و بهت زده فاته خواندند بعد یکی یک از دیوار رفتند بالا و دور تا دور نشستند روی دیوار و دیدند که زیلوی اسلام را روی مرده پهن کردند و فانوس کوچکی بغل جنازه است و دور کاسه آب و دور فانوس پشههای های بزرگ و بالداری می چرخند اسلام و کت خدا دوباره پریدند این ور دیوار مشتی جببار و پسر مشکی سفر را صدا کردند کت خدا به مشتی جبار گفت باید برین سید آباد. پسر مشکی سفر گفت حالا؟ اسلام گفت آره همین حالا کت خدا گفت با گاری اسلام راه بیافتین و برین سید آباد پیش هاچ بهش بگین که آقا مرحوم شده بیاد برای نماز برش دارین و بیاین آقا خودش وسیعت کرده مشتی جبار و پسر مشتی سفر هم دیگر رو نگاه کردند و رفتند طرف خانی اسلام اسلام گفت وقتی مالونده رو برمیداریم مواظب باشین که بوزه نیاد بیرون پسر مشتی سفر گفت موازه هستیم و رفتند اسلام و کت خدا آمدند کنار استخر و استادند لب گودالی که سنگ سیاه مردشوری اون تو بود مشتی بابا آمد و ایستاد کنار آنها و از کت خدا پرسید فکر میکنی که آج شیخ بتونه بیاد؟ کت خدا گفت چرا نتونه؟ اگه بدونه که آقا فوت کرده حتماً میاد مشتی بابا گفت آخه تو سیداباد مرز اومده و مردم ریختن خونه گدا روزی سه چهار مرده میبرن بیرون کت خدا گفت از کجا خبر شدین؟ مشتی بابا گفت زنی میره ابراهیم که با پسر آقا دخترش رو برده بود شهر برگشتنی دیده بود که سه شلوغه اسلام گفت راستی پسر آقا کجاست؟ حالا که باباش فوت کرده بازم پیداش نیست؟ کتخدا گفت تو خونه خالش افتاده مونده مشتی بابا گفت خاله که پیش زنای دیگه است خدا گفت دیشب که من رفتم دیدم تو خونه خاله عجیب جا خوش کرده اسلام گفت چرا آقا تموم نکرده خبرش نکردی؟ کت خدا گفت خبرش کردم نمیدونی این زن میر ابراهیم چه رویی داره استاد جلوم و گفت نمیذارم بچه خوارمو بر این زهره ترکش بکنین مشتی بابا گفت بهتر شد که خبرش نکردی کت خدا گفت هیچگی را خبر نکردم من تنها بودم که تموم کرد یه دفعه دیدم که دیگه سینش حرکت نمیکنه. فانوس را بردم و دیدم که تمامه. اومدم بالا که رفتیم و زیلو را آوردیم. مشتی بابا گفت، حالا تا صبح چه کار کنیم؟ کت خدا گفت، همه بیدار میمونیم. اسلام گفت، آره، نمیشه خوابید چیزی به صبح نمونده. هر سه راه افتادند و از هاشیه استخر استخ رفتند جلو. زنها که دیدن مردها میآیند جمع شدند دور هم و نگاهشان کردند. پاپاخ هم که بیدار شده بود، گیج و منگ ایستاده بود کنار زنها. مشتی بابا گفت، بهتره بریم آقا رو پیدا کنیم. اسلام گفت، آره بریم. کت خدا جلوتر، اسلام و مشتی بابا پشت سرش رفتند تا رسیدند کنار حیات آقا. مردها هنوز دور تا دور روی دیوارها نشسته بودند و داخل حیات را نگاه می کردند. اسلام رفت بالای دیوار و حیات را نگاه کرد. به نظرش آمد که سینه مرده آرام آرام بالا می برگشت و پرید پایین. کت خدا گفت چه خبر بود؟ اسلام گفت خبری نبود. هر سه از کوچه اول گذشتند و رفتند طرف خانه میر ابراهیم. کوچه ساکت بود و خلوت. هیچ صدایی نبود غیر از صدای پای آن ستا. اسلام در کوتاه خانه را باز کرد تو حیات کسی نبود برگشتند دو پنجره اتاق را که به کوچه بود باز کردند. گربه گنده که پشت پنجره بود بلند شد و خود را تکان داد و آمد بیرون. اول کت خدا و بعد مشتی بابا سرشان را وارد اتاق کردند و بوش دادند کسی گریه میکرد. اسلام گفت: «گریه میکنه؟ کت خدا گفت: « از کجا فهمیده؟ اسلام کبریت کشید اتاق روشن شد کسی ایستاده بود ته اتاق و سرش را گذاشته بود توی تاخچه هق هق گریه می کرد اول کت خدا رفتو و بعدش اسلام مشتی بابا ایستاد بیرون کت خدا و اسلام تو سیاهی ایستادند مشتی بابا از بیرون گفت آقا دنبالت میگشتیم. میدونی که باید برگردی خونه سیاهی دوباره سرفه کرد اسلام گفت آره قربون جدت، باید برگردی خونه، حالا دیگه آقای ده تویی سیاهی، از توی تاریکی، بلند بلند گریه کرد. پسر مشری سفر و مشری جبار، سوار گاری اسلام با عجله می طرف سید آباد. راه تا نصف سرازیر بود، آنها با سرعت می رفتند. چرخ به اسب کمک می که زودتر برسند. از شور به بعد تنها اسب آنها را میکشید. آدمها و گاری را و سنگینی چرخها را. از دهک آمدن بیرون مشتی جبار گفت آقا حیف شد. پسر مشتی سفر گفت آره حیف شد. مشتی جبار گفت آقا نسیر خیلی بچه است. نمی جای آقا رو بگیره. پسر مشتی سفر گفت آره خیلی هم بچه هست. مشتی گفت بالا سر جنازه که نبود. پسر مشتی سفر گفت نه نبود. مشتی جببار گفت میگن از خونه خالش نمیاد بیرون. پسر مشتی سفر گفت آره تو خونه میر ابراهیم کنگر خورده لنگر انداخته. مشتی جبار گفت میگن از روزی که دختر خالش رو مریض خونه اینجوری گیجو ویج شده. پسر مشی سفر گفت: آره، ننه منم همینو میگفت. مشی جبار گفت: میگن از زانوی دختره چرک میاد بیرون. مثل لوله ی افتابه، دیگه هم نمیتونه راه بره. پسر مشی سفر گفت: چرا میتونه راه بره؟ اما چرک رو راست میگن، بیرون میاد. چه جوری هم بیرون میاد؟ مشی جبار گفت: ببینم نکنه آقا خاطرخواه دختر خالش شده پسر مشتی سفر گفت من نمیدونم شایدم شده اما دختره مریض و مردنیه میدونی که مشتی جبار گفت آره ولی بازم ممکنه نه؟ پسر مشتی سفر گفت ممکنه مشتی جبار گفت عجب روزگاریه آقا هنوز دهنش بو شیر میده پسر مشتی سفر گفت شیر هم نمیده 15 سال بیشترشه مشی جبار گفت بعضیا 15 سالم بچن بعد هر دو ساکت شدند رفتند و رفتند تا رسیدند به سنگ بلند و چارگوشی که مثل منبر افتاده بود کنار جاده مشی جبار از گاری آمد پایین و چرخ‌ها را نگاه کرد و مطمئن شد و گفت بریم پسر سر سفر گفت بریم هر دو سوار شدند سر اسب را برگرداندند و افتادند به بیراهه و رو به کوه بزرگ مشی جبار گفت بهتر بود یه پیرمرد هم با ما میومد بسر مشی سفر گفت آره خیلی بهتر بود مشی جبار گفت ممکن ها شیخ برش بیاد بسر مشی سفر گفت آره ممکنه برش بیاد مشی جبار گفت خدا کنه از سیداواد نرفته باشه بیرون. پسر مشی سفر گفت، خدا کنه. مشی جببار گفت، هاشخ می دونست که آقا مریضه؟ پسر مشی سفر گفت، نه، نمیدونست. دونست. جبار گفت، چجوری خبرشو بدیم؟ کله سهر بود که آنها به سه نزدیک شدند. خانه ها کمرکش کوه روی هم چیده شده بود. به یکی از خانه که وسط خانه دیگر بود، سطح علم زده بودند. باد که میوزید علمها را تکان میداد مشری جبار و پسر مشری سفر که روی گاری ایستاده بودند فکر میکردن خانه خود به خود تکان میخورد یک نفر سید که کله بزرگی داشت پیدایش شد مشری جبار صدایش کرد سید آمد جلو مشری جبار گفت هاشخ تو ده سید گفت آره تو ده ولی مریض شده افتاده مشتی جبار گفت مریضه؟ چشه؟ سید گفت خیلی ها مریضن یه هفته بیشتره که من از اومده تا امروز ده نفر بیشتر مردن مشتی جبار گفت چرا؟ سید گفت خدا میدونه چرا مریضا همشون برا دعا و شفا جمع شدن اونجا علمها را نشان داد مشتی جبار گفت هم اونجاست؟ سید آبادی گفت تا دیشب تو خونه خودش بود ولی دیشب رفت اونجا مشتی جبار گفت حالش خوب نبود؟ سید آبادی گفت آره اما یه اتفاق دیگه هم براش افتاده مشجی جبار گفت چی شده؟ سید آبادی گفت پسرش با دختر امت علی فرار کرده و حاشق از قصه حالش بدتر شده پا شده رفته اونجا پیش خودمون بمونه رفته اونجا که دهن مردم رو ببنده هر ستا برگشتند و علمها را نگاه کردند. مشتی به سید گفت تو نمی آیده؟ سید گفت چرا میام؟ آم؟ مشتی گفت پس بیا بالا. سید هم سوار گاری شد. هر سه را افتادند و وارد کوچه پهنی شدند که گودال بزرگی در وسط داشت پر از گلولای. اطراف گودال سنگ چیده بودند. از گاری پیاده شدند و از سنگ ها رد شدند و رفتند طرف دیگر. مشی جبار گفت: ما از بیل میاییم. سیداوادی گفت: میدونم این گاری هم مال اسلامه مگه نه؟ مشی جبار گفت: آره اومدیم سراغ آ شیخ. حالا باید بریم اونجا؟ با دست ها را نشان داد. سیداوادی گفت: آره باید برین و اون تو ببینینش. مشری جبار گفت اونجا کجاست؟ سیدابادی بحت سده نگاهش کرد و گفت کجاست؟ معلومه که کجاست؟ خونه گدا خانومه جبار و پسر مشری که حالیشان شده بود با هم گفتند آه خونه گدا خانوم. صبح که شد کت خدا و اسلام آمدند روی دیوار اسلام گفت کت خدا بریم مشغول بشیم تا حاج شیخ نیومده کارا رو رو راه کنیم کت خدا گفت آره بریم کت خدا و مشتی بابا و دوتا از جوانها رفتند خانه کت خدا و بیل و کلنگ و نردبان را برداشتند و رفتند طرف قبرستان اسلام و عباس و دوتای دیگر, دو دیگر هم رفتند خانه اسلام جارو و مشک و کاسیل و آبی و کیسه را برداشتند و آمدند کنار استخر. اسلام و عباس هرچه دستشان بود گذاشتند کنار بید و رفتند سر وقت گودال که سنگ سیاه مردشوری آنجا بود. اسلام و عباس گوشه های سنگ را گرفتند و حرکت دادند. مار کوچکی پرید بیرون و خودش را انداخت توی استخر. دو نفر دیگر هم آمدند و کمک کردند و سنگ را از گودال کشیدند بیرون و رو به قبلهش گذاشتند و زیرش را با سنگ ریزه محکم کردند. اسلام گفت خوب شد. عباس گفت آره دیگه تکن نمی خوره. اسلام با خودش گفت روز به روزم که سنگین تر میشه. زنها طرف دیگر استخر جمع شده بودند و توی استخر را نگاه میکردند پسر جوانی که کلاه نداشت و موهای سرخ و وزکردهش را ریخته بود روی گوشها از توی کوچه آمد و سینی بزرگی را که تویش بخچه بود داد به اسلام و گفت مال آغاز اسلام گفت میدونم و سینی را گرفت و گذاشت پای درخت و سنگ کوچکی را گذاشت روی بخچه که بعد نبردش مو سرخ از کنار استخر دور شد و رفت پشت خانه مشتی سفر مشی سفر سرش را از سوراخ وسط بام بیرون آورده بود و استخر را تماشا می کرد. از کوچه ها و بیدزار گذشت و رسید به قبرستان. کتخدا و مشتیبابا بابا و جوانها را دید که طرف راست شیر سنگی قبر می کند. رفت نزدیک و نشست روی شیر سنگی و تماشاشان کرد. مشتی بابا که خاکها را بیرون می ریخت گفت بازم بکنم. کت خدا گفت حالا تو بیا بیرون بقیهش رو من می کنم. مشری بابا آمد بیرون و کتخدا رفت داخل گودال کتخدا که از مشتی بابا کتاه بود توی گودال قبر پنهان شد تنها دماغ کلنگش که بالا و پایین می رفت دیده می شد مشری بابا بیل را داد دست کتخدا کتخدا که خاکها را بیرون می ریخت، یک دفعه خم شد و کوزه لعابی کوچکی را بیرون آورد خاکش را پاک کرد و گرفت بالا همه رفتن جلو کوزه لعابی آبی داشت و ماهی قرمز کوچکی را روی لعاب نقاشی کرده بودند. کتخدا کوزه را وارو گرفت و تکان داد. خاکستر نرمی بیرون ریخت که همه را به سرفه انداخت. غیر از مشتی بابا که خودش را کنار کشیده بود و فاته میخواند. دختر میر ابراهیم از روزی که پسرخاله و مادرش آورده بودند مریضخانه هنوز برایش جا پیدا نشده بود و افتاده بود توی باغ زیر درخت نارون پیر پرستار پیر و قدبلندی که موهایش را زیر چارقد آبی جمع کرده بود زهرها آش و شبها برنج برایش می آورد تا با لپه بخورد تمام دردها و سرفه ها یادش رفته بود فقط میخواست هر جوری شده در برود و فرار کنند و برگردد به بیل شبی که آقا مرد او خوابش را میدید که به پای آقا تنابی بستند و یک عده جمع شدند و میخواهند به ته چاه بزرگی سرازیرش کنند کلاخا آمدند و جمع شدند پشت بام آقا و بالهایشان را تکان میدند و گاری اسلام ایستاده سر کوچه مشتی جبار و پسر مشتی سفر استادند توی گاری پسر مشتی سفر کاسه‌ای به دست دارد و توی کاسه ماهی قرمز کوچکی دور خودش می‌چرخد. اینها را که دید از خواب پرید و زد زیر گریه های گریهش همه باغ را پر کرد پیرزن پیدا شد دمدمه های صبح بود بدو بدو آمد از توی دانانها دی ریختن بیرون و همه سرفه کردند پیرزن گفت واسه چی گریه می دختر میره گفت درد میکنه. پیرزن گفت کجا درد میکنه؟ دختر دستش را بلند کرد و در هوا گردش داد اول گذاشت رو شکمش و بعد رو سینش و بعد رو سرش و بعد دستش را آویزان کرد و گذاشت روی زانویش که بسته بودند و چرک از لای پارچه ها بیرون زده بود پیرزن گفت آها فهمیدم تفلک بیچارم هوا روشن میشد. باد سحر که می وزید خنکی خوبی میآورد. صدای سرفه ها از توی دالان ها تک و تک شنیده میشد. آدم ها برگشته بودن سر جایشان پیرزن گفت گریه نکن مادر الان دکتر میاد میرم سراغشان ببینم چیکار میتونم بکنم همانجا نشست تا آفتاب زد دربان در بیرونی را باز کرد و جمعیتی که پشت میله های بودند بودن ناله کنان آوردند دربان جلوشان را گرفت و در را نیم بسته کرد و مردم رفتن دستهاشان را بند کردند به میله ها و آویزان شدند و در حالی که صرفه می کردند به حیات و دالانهای باریک خیره شدند دکترها آمدند پیرزن دست دختر میر ابراهیم را گرفت و پله ها را رفتند بالا و رسیدن جلوی دکتر لاغر و قد بلندی که جلوی آینه دستمال به دهان ایستاده بود و صرفه می کرد. پیرزن گفت چه کارش بکنم؟ به ام بگین چه کارش بکنم؟ این بچه یه هفته بیشتره که مونده زیر آفتاب رو دستمون آخه خدا را خوش نمیاد دکتر آب چشمهایش را پاک کرد و گفت ورود دالانها را بگرد. اگه گوشه خالی گیر آوردی به خوابونش. ولی میدونم که تو دالانهای زنانه جا نیست. پیرزن گفت: اگه پیدا نشه چه کارش بکنم؟ دکتر شانه بالا انداخت و در حالی که بلوز سفیدش را میپوشید گفت: من چه میدونم؟ اگه زورت رسید یکی را مرخص کن اینو به خوابون جاش. پیرزن گفت: برم ببینم. دکتر گفت: نگاه کن ننه فاطمه یه چیزایی درباره تو میکن حقیقت داره؟ پیرزن گفت چی میگن؟ دکتر گفت میگن تو هر روز که میری بیرون دوبره بزرگی پر غذا و نون هم با خودت میبری پیرزن گفت آره حقیقت داره دکتر گفت چرا این کارو میکنی؟ پیرزن گفت غذای مونده رو که میخوام بریزن دور جمع میکنم و میبرم دکتر گفت تو مگه شکمت چقدر جا داره؟ پیرزن گفت، من؟ خدا میدونه؟ بعد با دختر میر ابراهیم از پلا پایین آمدن رفتند سراغ دالان اولی که دراز و خفه بود با نیمکت های چسبیده به هم و زنهای لاغر و استخانی که با چشم های برآمده به بیرون خیره بودند. هر دو وارد شدند. زنی توی کاسه اش صرفه می کرد. پیرزن و دختر که نزدیکش شدند بلند شد که برود بیرون. پیرزن ایستاد: به جای خالی زن نگاه کرد و دست دختر را فشارد یک دفعه دست دختر را ول کرد و رفت جلو و کاسه را دست زن دید که پر خون است و میبرد که خالی بکند از دالان اول آمدند بیرون، رفتند توی دالان دوم که شلوختر بود و سه تا از مریض ها یکی را گرفته بودند و بیرونش میکردند تو دالان دوم حتی زیر تختها هم پر بود بیرون آمدن پیرزن گفت: الان میبرمت یه جای خوب. و او را برد به گوشه باغ زیر درخت بزرگی که شاخه‌هایش را به بیرون باغ هم پهن کرده بود. کنار درخت گودالی بود و توی گودال خورجینی از نان و غذاهای مانده. پیرزن گفت: اینجا خیلی بهتره. دختر چیزی نگفت. پیرزن گفت: صبر کن جای خوبی واسهت پهن میکنم. رفت و با دو گونی بر که پهن کرد زیر درخت و دختر را خوابان روی آنها و گفت خیلی خوب شد. دختر چیزی نگفت. پیرزن گفت هر وقتن که گشت شد میتونی از اونا بخوری. خورجین را نشان داد. آفتاب از وسط شاخها افتاده بود روی هر دوتاشان و کلافشان میگر.